رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الكونين عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغبون بن أبصارهم ويحفظن خروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بالخمرهن على جيوبهن صَدَقَ الله العلي العظيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وعليكم منا جميع ورحمه الله دي سالنامه رو همه السلام وعرحمت الله وبركاته الله علی محمد و محمد و <تصفيق> محمد و سیدان سالروز غنبار حادثه درناک آشورا را همه با هم در مقدس امام معصوم اعلی و والسلام تسلیت ارز میکنیم و همینطور برای اهل مان و برای خود مان تعذیت عرض نموده نموده از خداوند متعال اجر در این مصیبت بزرگ مسئله داریم از آنجایی که شما مادران و خواهران هم دیر معتل شدین راه هم که به برکت حسین علیه و سلام کل فضای شهر عوض شده است مثل سابق نیست گفته شده بودم که تعطیل نمی شود ولی ماصلات و سلام کل شهر را تعطیل کرده است. حتی موتور و بایسکل هم تقریبا به سختی رفت و آمد می کند و حتی موتور هم اجازه ندارد که از راه عمومی به شکل عاری رفت و آمد کند. این از اثرات، و برکات و تأثیرات حسینی در شهر هست که قرار بود در روز آشورات تعطیل نشود اونچه که لازم هست از این فرصت بسیار مقتنم و فرصت بسیار اندک بهره خوبی ببریم یک <تصفح> نقطه رو راجع با بانوان و گرامی گرامیخش از حادثه غنبار آشرا یاد کنیم و همینطور ارز تسلیت داشته باشیم به محظر مقدسی مونعز علیه و السلام ما و شما در شب عاشورا دارم قرار میگیریم که بر اساس اونچه که کابل گرفتن این شب شب آشوراست و امروز هم روز نخوم محرم الحرام است. در شب آشورا که میشود ایمان علیه السلات و السلام به همراهانش دستور میده که هیزوم و خل... آ... آ... هرون چیزی که هست همه را جمع کنند پشت سر خیمه با خندقی بودند یعنی به تعبیر ما شما گودی و چکروی بودند گفتند آنجا بیندازید با فردا سوخ که شدند امام دستور دادند همون گودی رو آتش بزنند برای این که دشمنان از پشت خیمه با حمله نکنند و همینطور در همین شب جمه سلام دستور میدهد که خیمه‌گاه را همونایی که کمی دورتر بودن نزدیک هم بیایند برپا کنند خیمه را به شکل هلالوار به شکل ماه, ماه که اول بیرون میشه اینطوره حالت گیردی دارد به شکل گیردی خیمه‌ها ها را استوار کنند برای این که روی خیمه‌ها ها همه یک طرف باشند و پشت خیمه‌ها ها یک طرف پرده وقتی که خود واقع از این قرار میگیرد روی خیمه ها طرف هست که از خواب یاران محسن علیه صلی اللہ علیه السلام کنست صبح هم وقتی که جند صورت میگیرد گرد محسن علیه صلی نزدیک خیمه هاست از خیمه ها زیاد دور نمی شود یک کمی که از خیمه ها دور می شود دوباره ما علیه السلام بر میگردد و به همون جایی که اول استادن به خاطر این که از خیمگاه برد نشود نقل میکنند امام علیه و سلام در میان قتل و گاه همسور افتاده بود برای این که دشمنان نمیتوانستند به امام نزدیک شوند. بفهمند که آیا امام رمک در بدن نازنینش هست نیست یک دفعه گفتند که حسین افتاده به خیمگاه حمله شده ایمان علیه السلام سختی از جایش بلند شد گفت که ای شعیان عالم عصفیان اگر شما دین ندارید حدی اقل مرد باشین تا من زنده هستم به خیمگاه هم حمله نکنید ایمان علیه السلام در یک قسمتی از جنگ وارد می شود وارد شط فراد می شود دست نی برد که کمی آب بیاش آمد اینجا دشمنان می ترسند یک شایعه پخش میکنن. می کنند حسین. تو داره آب گوارا میلوشه به خیمگاهت حمله شد اینجا همون حسین آب را پس میاندازد از جایش بلند می شود و میرود لشکر را دوباره میشکافد خود را به خیمگاه میرساند بعد میبیند که نه این حرف دروغ بوده شایعه بوده برای این بوده که محسن علیه سلام آب نخورد همینطور وقتی ما در جای جای دیگه قضیه باکنیم کنیم می بینیم که در کوفه و شام وقتی که مردم غذای به خاندان احلو باید می حتی نقل شده غذا از دهن ادفال می پس می انداختن می صدقه بر ما خاندان حرام هست ولی از آن طرف در قسمت یه شهر کوفه هست یه خانوم سوال کرد که شما از ایران کی هستیم گفتن که ما بسرای آل محمد یک سلواتی بفرستیم اما محمد و محمد و آل محمد گفتن ما مصرهای آل پیانبر هستیم. اینجا میگن برای انها چادر آوردن و اینها چادر رو پذیرفتند. نکته نکته های دیگه هم در جای جای آشرا هست همه از اینا بیانگر چیست بیانگر است که شهده کربلا در کل بانوانی که در کربلا حضور داشتند در کل نسبت به هجابشان خیلی توجه داشتند. غذا را نمی غذا را پس می ولی حجابشان را محکم گرفته بودند. لباسشان را پس دوباره تلبیدن چادر را تلبیدن و چادر وقتی در کوفه برایشان داده شد چادر را رفتند و خودشان را پوشانیدند. نکته در چیست؟ نکته در اینه ما و شما به عنوان پیره به این خاندان و ادامه دهنده راه اون خاندان لازم است که یکی از اصول جامعه آشورایی که هجاب هست این رو در خودیمان داشته باشیم الحمدلله سمت به کابل که معروف به دارون مؤمنین هست یعنی در این سمت اهلیمان زیاد هست این نمود آشرایی و نمود ایمانی آشرایی که هجاب هست در بین بانوان این را انشاءالله در خود ما داشته باشیم امیدواریم ام همگان ما انشاءالله در صحرای قیامت در جمع شهده انشاءالله بی توانیم زائرانشان قرار بگیریم و اطراف حسین بچرخیم و حرمت صلوات بر محمد و آل محمد صل الله عليك يا عبد الله وهل الروح التي حلت دنو عليك منا سلام الله يا ابو ما بقينه وركي الليل وانهار يا سيدنا وماولانا إن توجهنا واستشرنا وتوصلنا بك إلى الله. وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ خَاجَاتِنُا يَوْ وَجِيْهَا اِنْدَلْنُو بچرو روام بخائی ماکتو هم را ما هم نبوشی بچرو روام بخائی ماکتو هم را هم نبوشی که خبر رزد بلیلا که دیگر کسر نداری امروز روز ناهم محرم الحرام بعدها رز نشان این است که روزی از غرب خانند جای جای رس که امروز روزه اول فضل عباس هر جای رسمشان و برمبنای که خودشان تشکیل دادن و مرسوم شدند اما امروز می خواهم دلهای من را ببرم کربلا گرچه گفتند مادر علی اکبر در کربلا نبود ولی خیل معروف هست که از مادر علی اکبر هم یاد میکنند دلها را روانه کنیم کربلا صبح آشورا اولین فرده که از خاندان حاشمی اجازه میدان طلبیدن گروفت علی اکبر بود آمد کنار بابایش صدا بابا جان اجازه بده میدان بروم الله کنار اینجا نقم میکنم حسین چون پسرش مات تعمل نکرد دارت با یک حالت عجیبه به پسرش نجازه میدهن پسر جان برو میدان اما نقل میکنن حسین یک اگاه معیستانه به سمت علی یعنی اکمر وقتی وقت علی اکبر به سمت میدان رفت. تو سین دستانش رو به سمت آسمان بلند کرد صدا زد خدایا تو شاهد باش من کسی را به سمت آنها فرستادم که خلقن و خلقن شبه بر خداست مرگانده بمان برای پیانبر خدا تنگ می شود و اکبر نگاه می کردید علی اکبر رفت سمت میدان تیداد زیاد را به جهنم واسل کرد برگشت داده بوبا جان خیل تشنم شاشر در سنگینی می کند حسین صدا زد نور دیده بابا برگرد به سبت میدان در خیمگا آف نیش به زودی از دست جد از دستان جدت رسول الله سیرا رفایی علي اكبر بر بر گشتم می درون ای وای نه خلن کنن ظالم تی روح حوالکار خرامت بگون علی اکبر فر علی اکبر, اکبر دشت هم اول بیکار اما بر اثر زر ضرباتی که در بدن باری شده بود نتوانست بالای عزم بالای عجدم شیند همانطور خودش رو خم کرد بالای زنه به طرف یال هست از اینجا سراسه مکنان به سمت دشمنان حرکت کرد اینجا نقل میکنند علی اکبر و هر کسی باشم شیر بدنی علی اکبر رو تیر بار همین که علی اکبر لحظات آخر رو داشت نیمی یک بار صدا زد بابا جا رسول الله را می بینم که برای سلام می رسانم می فرماید حسینم زاد بیا زاد شتاب کن همین دم برای ما به دوارا دوار که احساس نمی کنم حسین خود را به بالن اکبر رسانی آتید بدنی نازنین پفرزندش که پاره حسین دلش خود را انداخت روی بدنی علی اکبر علی رو سورتش را گزاش روی سورتی علی اکبر صدا بزن الالی جوان بیا برگردم سوی خیم دو رو تو هم را هم نباشی که خبر رسده بل اینا که دگر نداری حسین جوانش بود در اینا زانوانش شده ای یار زدا ز جانان دی ادی رو بر برد الخيمال سعونا مدد و الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي من يمن خلدين ينخلدون